دیستد و سال قبل تقریبا به دنیا آمده و سال 1206 هجری قمری وفات یافته از علمای نجد علمای که در شمال عربستان بوده از علمای که سفرهای متعددی داشته به عراق مکه، مدینه و با علمای زیادی نشست و برقاس داشته شویخش از علمای هند شویخش از علمای عراق و دیگر جاها معروفن الان نمیشه اینجا زندگی نامش رو ما اینجا بگیم وقت بمیشه که ما زندگی نامه این امام رو بگیم محمد باهاب رحمه الله سکنه و فسیح الجنان عالمی از علمای اهل سنت بوده که یک تافته جدا نیست صاحبی یک گروه و یک فرقه جدیدی در دائره اهل سنت نبود ما خوب میدونیم از قدیم و ایام گفتن اهل سنت و جماعت چار مذهبند مذهب اول ابو حنیفه رحمه الله مذهب دوم امام مالک مذهب سوم امام شافعی و رابع امام احمد بن حنبل اینا 4 چار ائمه تا امام از ائمه اهل سنت و جماعت که مصدرشون مرجعشون قران و سنت بوده همه این ائمه متفق بودن بر اینکه اگر قولی از اونها اجتهادی از آنها مخالف با دستورات خدا در قران و سنت بوده بزنن به دیوار متفق بودن بر اینکه که مرجعیت در قرآن و سنته این اتفاق این ایمه بوده بعد از این ایمه گروه های فکری متعددی به وجود میاند در اسلام که این ایمه از اون افکار بری بودن این ایمه صوفی مصلت نبودن معتظلی نبودن اشعری نبودن معتردی نبودن کررامی نبودن کلابی نبودن هیچ کدوم از این فرقه هایی که بعد از این اومدن اینها بعد اومدن. ابو الحسن اشریف بعد از اما مشافعی اومد ابو منصور ماتر بعد از ابو حنیفه اومد دیوی تیسه سال بعد از اینها اومدن و همچنین فرقه های دیگری که بعدا اومدن هیچ کدوم از اینها تابع یکی از این افکار نبودن اومت چیزی به اسم شرط نمیدونست چیزی به اسم شرط اکبر در اومت نبود وقتی که اون اعمه بودن در زمان ما مشافعی رحمه الله در زمان ما ابو حنیفه امام مالک احمد ابن حنبل چیزی به اسم اینکه کسی بره پای قبری نزد بکنه زدب رو کنه متبسل به مردهی بشه مردهی را صدا بزن اینچین این چیزی در امت نبود تا اینکه در قرن پنجون گروهی به اسم گروه فاطمیه در مصر اومدن گروه اسماعیلیه فاطمیه که اعتقاد داشتن قرآن بد داره و قرآن به ظاهرش نیست فحشا و منکر در قرآن او بکر ع زنا اسم شخص در زمان رسولا اسم یک مردی بود ولا تقرب و زنا منظور یک مردی بود زنا وجود نداره لبات وجود نداره نماز اقیم و وجود نداره حقیقت نماز رو اینطور کردن شخصی به اسم صلاح الدین ایوبی بلند میشه از امت اسلام و میره در مصر با اونها میجنگه تو تشکیل دولت میدن در قرنشارم افتدای قرنشارم اومدن کعبه را بیران کنن نتونستن اومدن حجر افلاق را برداشتن و در گوشه ای از جزیرت العرب برای خودشون ای ساختن و بیس سال نذاشتن مسلمان ها برن خانه خدا را بکنن راهزنی میکردن مسلمان ها را میکشتن این حال امت بود از اونجا بعد از اومدن فاطمی ها روی کار شرک کم کم داشت میکرد و به وجود اومد. فرقه های کلامی بودن کسانی که اظهار نذر در مقابل قرآن م می گفتم خدا سخن نگفته خدا جسم نیست خدا زنده نیست و دیگر مسائل کفر که داشتن. ولی چیز که چیزی به اسم اینکه برند پای زیارتی قبری مرده ای ذبح میکنند برای غیر خدا آیه از قران رو بخونن نقل بکنن حرام خدا را خاطر این چیزی در اومت نموت تا اینکه اینها مدن زنا را حلال کردند. لبات را حلال کردند. و مصلا حدین ایبی با با اونها جنگید بخواهر همین شیخ الاسلام ابن تیمیه در پاتوا چند اینجا ستایش میکنه صلاح الدین ایوبی برادرم صلاح الدین ایوبی مجاهد ما جنگید حتی خود تیمیه بلند میشه از از دمشق میره به میجنگه با اونها کتاب مینیویسه در علی اونها بر رد اونها اون چیزی که برای ما مهمه اینه که وقتی علم نباشه جهل میاد جهل انواع داره جهل یک نوع نیست جهل میاد عالمي ميادم با اون جهل بعدن بجنگه مجددين خدا قرار داده ان الله لا ينتزع هذا العلم انتزاع انما ينتزع بقبض العلماء قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينتزع هذا العلم انتزاع انما ينتزع بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالما الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا خدا علم رو بعدن درن ميطوري رفتن مردم ميران پيشه جهال وجهال خودشون گمراه و مردم هم گمراه میکنن خب حال اومد در زمان محمدوهاب اینچینین بود بقیع پر از قربه بود هر گروهی هر فرقهی هر اهل منطقی برای خودشون یه قبری داشتن کعبه خدا چند قدمیشونه میان به قبرستون دست به دامن مردن کعبه خدا رو رها کردن سجده خدا نماز و دعا رو رها کردن چه به اون مرده محمدوهاب میان کتاب صحیح و بخاری رو باز میکنن صحیح مسلم رو باز میکنه میبینه کتابی هست اسم کتاب ایمان کتاب توفیق چی درش هست؟ نهن حلیت صحیح مسلم نهن نبی صلی اللہ علیه و تلم این یبن علی قبول و این یکتب علیه و این یجسس القبر رسول اللہ نایی کرده قبر گشکاری بشه بنا بشه نمیدونم روی قبر نوشته بشه فرش حال امت اینه مزار قبه هست بنا نوشتن روی قبر کردن. دور قبر رو سنگ‌چیدن و گچ زدن سیمان زدن رسول الله نهی کرده در حدیث‌های صحیح مسلمه حول امت ولی چیز دیگه واقعا ام ما میگه اهل سنت و جماعت هستی پس چرا این چیزایی در امتت میاد کتاب توحید رو نمی نویسه احادیث رو جماوری میکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم از تمایم از تعویذ نهی کرده بری توی این ها ببین چقدر تعویذ به دست پارچه زیارت و سبزه و مشکی و از اون دعاهایی که مله‌ها نوشتن خدا میدونه توش کشت سحر و شعب بدبازی هست. انباع غمز و رموز و ارتباط با جن، الهامات جنی که خودم اون جادوگرها میدونه. امتم در حال زلت به سر میبرد. این منطقه ها، مناطق جنوب، علیج، زیر نظر استعمار پرتغال و انگلیس و دیگر کشورها بود. دولتی به اسم دولت اسلامی که قدرت و حیمنت داشته باشه نبود. دولت اسمانی ها، چون ترک بودن خودشون در، اون مناطق ترک زبانان در ترکیه خلاصه کرده بودندن این مناطق پر از راهزن بود. کم می شد مردم بتونن سالم برن سالم بر بگردن پدران ما بودن آج... با اجدادمون بودن. وضعیتشون رو میکردن و کم بود کسی می حج و سالم برمیگشت پر از راهزن بود. دوستانمان خودمون از کسانی اه... که تو مدینه بودن خودشون اعتراف داشتن میگفتن که ما پدر پلربهمون می گفت ما راهزن مدینه بودیم. کتی نمیذایم وارد مدینه بشه. اللا اینکه کل آذوقق باتونشک برمیاشتیم. حال امت بود چرا این اینقدر راهزنی دزدی سفاول قد سرقت چرا اومدن غرب بر ما سلطه یافتن چیزی جز این بود که ما از قران و سنت دور بودیم چیزی جز نبود محمد وهاب اومد گفت که امت جنب بشه برگردید به مرجعی که خدا گفته فهمتن از بحث میشه فرضو لله و رسول اون چیزی که خدا گفته بر بگردیم به الله و رسولش به قرآن و سنتش برگردید اومدن باش مبارزه کردن جنگیدند اومد سار توطعه کرد گفت که اینا وخوابییان اینا نمیدونن اینا ما داریم بهشون پول میدیم و توطعه کردم بر علشون اسم و بح... بر چک وخواابیت زدن و اینا فرقه وخواابیان فرقه جدیدن اینا ضد اسلام از ضد دین ای مردم آگاه باشید جدیدن. و خاطر همین اما محمض و ها. اومد یکی از کار هایی که کرد خارج از اون کتاب های مثل کتاب توید و کتابهایی قبلا اینجا ما داشتی مثل کتاب اودر و یا عسیب سته. یک از کتاب های کتاب نواقض اسلامه شما بندی از بلود این کتاب نمیخونید جز اینکه مرجعی از کتاب های فقی احمه اربعه دارید شما برید کتاب های فقی را باز میکنید ببینید کتابی دارید بابی دارید بیت باب و احکام المرتج باب احکام المرتج احکام المرتجین مرتج مرتب کسی که اسلامش رو نقض می کنه بخاطر همین اسم کتاب رو دهد اسلام چیزی که اسلام رو نقض می کنه نقض می کنه یعنی می شکنه ولی ایمان بعد توکی دهد قسم هاتون نشکنید شکسته میشه شه فاسد می شه ایمانتون اسلامتون از بین میره ره نواقضه فقه مثال زدن مثال ها زیاده تو بحث ردت و انواعش مثال ها زیاده اینجا ها, ها اشاره محمد در این کتاب به مهمترین انباع نواقض مهمترین انباع نواقض انباع اون چیزهایی که اسلام را میشکنه اسلام را خورد میکنه نابود میکنه اسلاممون از بین میره چونه ما رو حفظ بکنیم اسلامی که خدا غیر از او خدا از ما نمیفذیر و ما یبتر غیر اسلامی دینم فلا یقبلمین غیر از اسلام خدا از هیچ بنده ای هیچ دین نمیفذیره بعد از رسالت رسولات الله علیه و سلم ما ی ولا نما يسمع به من يهودي ولا نصير ولا يؤمن به الا وادخله الله النار كما قال صلى الله عليه وسلم نصراني كاعتقاد در ايتا فيانبر يا فرزند خداس انهي كي ما در اصله ما بهشون ميگين مسيحي كي اصله نصراني نصراني نميشبه از من يهودي از من نميشوبه ايمان نمياره ما در اين كه خداون او رو برد و کو بت خدا اونم جهنم حالت مخلد در جهنم بشه چرا چون خداوند غیرت اسلام محمد صلی الله علیه و سلام از ما دین دیگه اینانای پذیره این دین رسول الله صلی الله علیه و سلام چیه و با چی نقد میشه از ما گرفته میشه دین رسول چیه با چی از ما گرفته میشه اینجا حرفو سخانه این امام در این کتاب امام با بسم الله الرحمن الرحیم و ابتدايه به نامهای الله صلی الله علیه و سلام که به فراق به عظیم فرس، بزرگ فرس، پادشاه ایرانیان نوشت با بسم الله الرحمن الرحیم الله کرد امام تو که خداوند شریه فاتحه را با بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم باذن یعنی به با... با اسم تو الله بای تبرک میگن. بای تمنا، بای دعاست. یعنی پروردگار را با تبرک به اسمت و با طلب و سعادت به تو، بای استعانت معروفه، بای استعانات به اسم که یعنی با استعانت به تو پروردگار این کتاب را آغاز پروردگاری که رحمان الرحیمی قال رحمه الله تعالى اعلم ان نواقض الاسلامی عشرت نواقض گفتیم اینجا حسر نیست بدان که نواقض اسلام ده تاست هفچند که خودش در جاهایی مثل درررسلیه یاد میکنه که بیش از 400 هست بل بل هست بلی اینها مهم مهم که گفتیم در کتاب‌های فقهی در باب ردت بحثش میشه خداوند هم در قرآن به ردت اشاره ولا ترتدوا عن ادباركم فتنقلبوا خاسرین ولا تبتدوا مرتد نشید انسان با چی مرتد میشه با نواقص اسلام چطور ما مرتد نشیم همچنین آیات زیاد هم من منكم عن دینی فیموت وهو کافر آیات زیادی قال الاول الشرك فی عباده الله تعالی الشرك فی عباده الله قال الله تعالی إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أمصار ومنه الذبح لغير الله كما يذبح للجن أو للقرب أولاً ناقل أولاً نشيذي كإسلام رنقل يكون الشركة بخضابان شركة بخضابان شوية مؤمني دار عجب دار غرور دار كبر بيفتن من در شرك بيفتن؟ میگه میشه مسلمان مشرک بشه ابراهیم علیه السلام که به اون درجه یقین و حق یقین و علی یقین رسید دعاشو و جنبنی و بنیه معبود الاصنام میترسید از شر پروردگارم من و ذریه من را از شر دور بساز از عبادت بتها دور می میترسید از شر ایمه تا تفسیری آیه گفتن قال قال و من یامن من مکر الله بعد ابراهیم کی کی در امان از مکر خداست از اسفتنی که امتحاناتی که خدا گذاشته بندگانش بعد از ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام از امتحان خدا می‌ترسید چطور ما رو در امان بدونیم شرک به خداوند همونطور که اینجا آیاتی را اینجا یاد کردن دلیل از قرآن آورده مبطل ایمانن مبطل اسلام است خداوند هر گناهی را شاید ببخشه هر گناهی را صد زنا شاید خدا ببخشه ولی که شرک ان الله لا یغفر لا یغفر ان یشرک به شرک و یغفر ما دون ذلك غیر الشرك اکبر غیر ان خدا برکتی که بخواد نباشه خب شرکیه تعریف شرکیه تعریف شرک علما تعاریف زیادی دارد بهترین تعریفی که میشی یادت کرد با توجه الله علیه و آله ان كنا لفی ضلال مبین اذن سویکم برب العالمین تسبیه قرار دادن غیر خدا با خدا در خصوصیات خدا. خداوند چه سری خصوصیات داره؟ از خصوصیت خصوصیات خداوند روئیتشه. خداوند خالق و مدبره. از خصوصیات خداوند اسماء و صفاتشه. سمیع، بصیره. هیچ کس مثل خدا بینه هیچ کس مثل خدا نمی‌شنوه. هیچ کس علم غیب نداره. اگر تو گفتی که فلان عالم یا رسول الله صلی الله علیه و سلام از علم غیب با خبر میدونه، دو تا چه جودی؟ ناقص، شرک اکبر. برده است، توی برزنجی. بعضی جوها بالاقل خوصا تو جنوب ما رت و دوی خونده از عبیات شیه در غلوب در, در رسوله صلى الله عليه وسلم میگه انا من علم كعلم اللوح والقلم ای رسول خدا از علومتو علم لوح و قلم علم لوح و قلم که مال خدابند کسی جز خدا نمیدانه میگه از علومتو ری رسول خدا شيئ. حلم لوح محبوس این مسابی قرار بند بند علم غیب راسولش، پیامبرش رسول الله صلی الله علیه و سلم نه بیتونن. هلو кунту اعلم الغیب، لست لست کسترتم من الخير و ما ما سن یسول. اگر علم غیب بیجولسه، بدی بهمله میریسارهای خوب زیاد میکردن ولی نمیدونم نبی اینجا چیه؟ نبی علم غیب الا انکه خدا به رسول الله صلی الله ابلاغ بکنه. مثل نشانه های قیامت که خداوند ابلاغ کرده الله، دجال میاد، ابلاغ خدا رسول الله صلی الله عليه وسلم. بس و سلم پس رسول الله صلی وسلم... الله علیه از غیب با خبر نیست اگر بیایم اثبات علم غیب بکنیم در رسول الله صلی الله سلام در یکی از خصوصيات پروردگار مخلوقی را برای خدا قائل شدیم شریک قائل شدیم چه چی این شرک لا ان لا ان اشرکته ليحبطن عملك ولتكنن من الخاسرین اگر شرک بیایی ای رسول خدا کل اعمال تابود میشه شرک کل اعمال رو نابود میکنه بهش را بر انسان حرام میکنه چنانچه چنان ما اینجا در فرموده خدا داشتیم اینه و من یشرک به الله فقط حرم الله علی الجنه بهش بر انسان حرام میشه این حال امت بود هر جا میرفیدن این کتاب می کرد شما برید مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که میید بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنید ابیات این برده ابیات این شرکی بر ذریه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روی قبل اونجا نوشته بالا چرا چون حال امت متور شدن و غرق شدن در شرقیات بود حال امت اینجوری بود هنوز آثار اون قلب ها اون زیاده روی ها در حقوق بندگان هنوز همچنان آثارش در امت هست چرا پاکش نکردن و چرا تذیش نکردند اون دیگه بماند بحث ما نیست اون چیزی که برای ما مهم نه اینه که شرک مساوی قرار دادنه غیر خدا با خدا در خصوصیات خداست در روبوبیتش در اصما و صفاتش در عبادتش اصل دین مبناش مبنای دین دو جنبه هست دو جنبه علم عمله در این دو چیز خدا را باری یک تا قرار بدیم در خداشناسی هیچ کس را مثل خدا ندانیم شریکی برای خدا قائل نشید در خالق بودنش در رازق بودنش در مدبر بودنش در سمیع بودنش در عالم غیب بودنش هیچ کس نباید شریک خدا در علمی که به خدا دارید یعنی خدا را در افعالش یکتا قرار بدید هیچ کس مثل خدا نیست قل هو الله اح الله استمد لم یرد و لم یولد و لم یکن له کفو کفو احد هیچ کفعی شریکی ندی نذیری خدا نداره هیچ کس مثل خدا نیست خدا همتایی ندارد پس خدا را در افعالش بی همتا قرار بدیم همتایی ندارد خدا این میشه توحید علمی علم ما نسبت به خدا عمل ما هم نسبت به خدا باید ما باید یک تا پرست بشیم این بهش میدن توحید عملی یک تا قرار دادم خدا من در افعال ما نباید در اون سعری که به خدا انجام میدیم شرک بیاد من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركه کسي عملي انجام بده ولو بخاطر یا درش بياره واسطة درش بياره مثل مشرقين ما نعبودهم إلا لقربون إلا, إلا الله ظلفا إنك مانورا نمیترسل مجال إنا واسطة ومشمارا بخدا نزيك بکنن واسطة قرار دادن اندار دعا دعا عبادته دعا رسولا بيجي هو العبادة دعای كعبادته زبخی که همین اینجا مثال چی میاره؟ این امام مثال زبخ میاره دعایی که عبادته زبخی که عبادته همه ماست ما باید یک تا پرست بشیم خداشناس موحق خدا را در افعالش یک تا قرار بریم خداشناسی تنها به درد نمی کوره قبلا داشتیم در متون قبلی اولیر به رسولی سفر داشتیم خداشناسی تنها به درد نمی چرا؟ تنها بگیم خدا, رازقه، خدا خالقه به درد نمیفوره چرا؟ چون ابو جهل و ابو لحب اقرار داشتن به اینکه که خدا بند رزاقه في السماوات والأرض مالكیس آتمنها خالق کیس؟ ای قولون نه؟ الله قل من يرزقكم من السماع والأرض برست روزیتو کی میرسونه؟ فس من؟ الله الله رب عنوان خالق، رازق، مدبر قبول لاشه آیا این توحید، این شناختشون، آیا به دردشون خورد؟ فرعون لعنت الله عليه خدابند در ایمانش نسبت به خودش چی میگه؟ چی یاد میکنه؟ میگه وجه حدوبی ها و تیقنت ها فرعون نمی که ایمان داشت بلکه چی داشت؟ یقین جعود کد به یقین داشت شناختش خداشناسیش یقینش نسبت به خدابند یک تاست خالقه به دردش خورد خیر پس خداشناسی با جحول با هم دیگه جمع نمیشن با عدم عبادت یا شریک قرار دادن به خدا من در عبادت به درد نمیخوره همونطور که به درد فرعون نخور ابلیت شناختش به خدا به دردش خورد وقتی که گفت رب بی بی ما تنی اقرار تنی به روبیت خدا کرد هر بردگار من چون مرا اقوا کردی چون من فریب خوردم اینجا امتحانم کردی به من مهلت بده تا آدمم امتحان بشه آ تبلیغ به پروردگاری خداوند به دردش خورد پس اصول دعادت اصول دعادت دو تا مبنای اساسی داره که باید یاد بگیریم از رسول الله صلی الله علیه و سلام قل هذه سبیلی ادعو الى الله ادعو دعادت من بصیر خداباتی هل بصیره بصیرات بصیرت, بصیرت چی علم علمی که خداوند دستور میده به رسولش فعلم أنه لا إله إلا الله علم بلا إله إلا الله علم بتوحيد علم بإنك خضابان يكتاث در أفعالش وخضابان رو يكتاث در أفعال المنقرار علم بحقيقة كلمية لا إله إلا الله علم أول ركن إيمان علم بإنك لمهاش كثير بیاد سر داوود اینکه اشهد ان لا اله الا الله و آیا همینطوری با کلمه بدونی که معناش بدونه وارد اسلام میشه خیر باید معناشو بدونه و مقر معنای این کلمه بشه تا وارد اسلام بشه همینطوری شخص بیاد بگه که من این کلمه رو میگم یا این کلمه رو تلفظ میکنه بدون معنا ازش قبول نمیشه به خاطر همین خداوند دستور میده علم به این کلمه هست انسان انسانو نجات میده یرفع الله الذين امنوا منکم الذين اوتوا العلم درجات خدا بالا می بره حسابو با علمات علمی علم, علم توحید بدبخت خار ذلیل اون بنده ای که خداوند او را آفریده به خاطر عبادت ولی حقیقت اون عبادت را نمیدانه که باید خداوند را در اون عبادت خالص قرار بده و ما خلقت الجن والانس الا بدون جن و انس را نیف الى خداوند مگر برای عبادت این بنده این بنده که در شرک افتاده شریک برای خدا در عبادتش قرار میده حقوق خدا را نمیدونه حقیقت عبادت رو نمیدونه رسول الله صلی اللہ علیه و سلم به اصحاب شیاط میداد محب از کتاب هایی که داره کتاب ترحید حدیث معاز میارد در ابتدا ابتدار معاز میرد رسولا گفت سوار اولا شو سوار شدم هم کنت رضیف النبیس و سالا حمار فخاله یا معاد احتدگی ما حق الله علی العباد و ما حق العباد علی اللہ بر بندگان حق بندگان قلت قال قلت الله ورسوله اعلم الله رسوله الصلاه والسلام میگین چند بار از من پرسید گفتم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا دو تا اصل نث و لا اله الا الله قال حق الله على ان يعبدوه خضر عبادات لا اله الا الله لا اله نات. إلا الله إثبات إن جرى صلاة اثناء وقريد شتور معناي توحيد لا إله إلا رب معزيات منه إلا الله أن يعبدوه هذا ربما فرثا معناي حقيقية كلمة لا إله إلا الله إلا معبودة بحق إلا الله ذلك بأن الله هو الحق هذا بحق كفرات لي غيره هذا أم معبودة للجابة باطلة لكن الله عبوديته أن يعبدوه هذا ربما ولا يشركوا به شيئا لا إلهة لا يسرك بي شيء فإن دار القرآن زيادة وما أرسلنا من قبلش من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله شنب الطاغود حرف ينبري يقولون يخدامين لما في رسالين بارشي بود إنك دعبت بدن بعبادة خدوان يكتوى يكتو فراتي شرا نقف خدوان شرسين شرا نقف خدوان من فينبري رب فرستاد هم برای این که خدا را به مردم بشناسونن بگن خدایی هست خالقی هست مدبری هست رسک روزی رفت چرا نگفت بایده که بلند میشد میگفت ما خدا را نشد اتبا خدا بارم معرفی بکن خدا کیه تا بعد ما خدا را ببرستی چرا ابو جهلی چینی حرفی نزد ابو لحبی چینی حرفی نزد سرانه فرشنی حرفی نزده چون خدا در فطرت و ذات انسان خدا شناسی ترار داده دا همونطور که دا خداوند در قرآن میگید و اید اخذ ربک من بنی آدمه من ظهورهم ذریتهم و على انفسهم علیسو بر رب بکن قالوا بله شهدنا وقتی خدا آدم را خلقه کرد از تمامی انسانها تعهد بر شناخت خودش گرفت و همه ان بوخم پربردگارت خدای ما هشتی و حدید ارسایحین داری که رسولان میپرماید ما من مولود الا یولد على الفطره مولودینیس نیست مگر اینکه بر فطرت خداشناسی خلقت میشه اونها را خدا را میشناختن به نسبه قران ما گفت خدا را میشناختن به خاطر همین تمامی پیامبران اولین کاری که شروع میکردن چی بود دعادت به کدام یک نه توحید خداشناسیه خداپرستی خداپرستی به یک تاپرستی خدا, خدا, پرسی؟ خدا, پرسی، پرسی، خدا در پرستش در افعال ما خودمون اینطور قرار بدیم خدا را در افعال خودمون اون عبادت هایی که انجام میدیم از ذبح فصلي لربك وانحر براي پروردگارت نماز بخون براي پروردگارت قرباني بكن كل صلاتي ونسكي ومحيي وماتي لله رب العالمين لله كلن صلاتي ونسكي نصرتيه قرباني بخاطر همین رسوله تسبی مندبه علی غیر الله فقال كذبت بغير خدا بكن شر بتاره شر شده خب الان شما دوره برای خودت نگاه بكنید جادوگرانی که هستن به اسم ملا میگن یک خروس بیاد ببرم برای جن سر ببرم بیار نمیدنم بز بیار برم سر ببرم و مردم عوام ما فرید میخورن این کار رو انجام میدن پدران ما میکنه ما رو نمیبردم پای زیارت اونجا میگه زفت نمیکردن کجا میخوام بریم کجا میخوام خب این آیات این احادیث سریع واضح رو میخوام شکار بکنیم این حال امت مست امت این امام مردم رو نجات بده. بود چیزی غیر از قرآن و سنت تو حرفاش نیست خدا را یکتا قرار بدیم در افعال ما در فعل خدا همین حرفش بود کسی را با خدا مساوی قرار ندیم. هیچ کس را با خدا مساوی قرار ندید خدا یکتاست ولم یکول له کفوًا خدا یکتاست در همه چیز یکتا قرار بدیم. در افعال ما و در افعال خودش قالا و من يذبح لغير الله كمن يذبح للجن او للقبر فرقی لمیکونه برای جن کسی ذبح بکنه یا چه برای هر کسی زبش کردن برای غیر خدا به اسم غیر خدا خدا اون زبیخه را حرام کرده و مذضوع به حال النفر زبش به غیر خدا زبشی که اسم غیر خدا روش اومده به اسم هر کسی به اسم ولی باشه به با اسم هر کسی میخواد باشه اون زبیخه با زبیخه مشکی فرقی نمی کنه حکمش حرامه و اون شخص دوچار ناقض دین شده آیا هر شخصی دکتور این نواقص شد میتونیم حکم بدین که از اسلام خارج شده مسلمان نیست کافر مشرکه خیر گفتیم دیگه اون دیگه برمیگرده به چی اقامت حجت بیان ما حجت بنتوا ما شما جاهله و این به اتفاق آرمه شخص جاهل تعلیم داده بشه هم که خودم هم دوها میگه میگه کسانی که میرم پای زیادت از میکنن ما تکفیر نمی کنیم یا تبرق به اون ذریع تکفیر نمی فعلشون کفره تصویرتون نمی کنیم الا بعد از اقامت حجت و بیان محجت و وظیفه ما دعات هم همینه به بی مردم بیان می کنیم اونها را از جهنم و اینکه بهشت خدا پر اونها حرام بشه دجات بدیم ما باید دلسوز مردم باشیم دلسوزی مردم در اینه که به اونها عبادت خالصانه برای خدا را یاد بدیم و اون چیزی که این عبادت را نقد میکنه. این اخلاص در عبادت را نقد می کنیم. هذه الدعاة وفظيفية فيهم برؤلاء الخضابو قال الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم و يسألهم و يتوكل عليهم كفر إجماعا إجماع يعني در اين مسألات بين أحمد و أبو حنيف و مالك و أحمد بن حنبال بين امي چارنذاب و حتى امي ظاهريا امي محل اختلاف نیست. اتفاق درش کسی واسطه در دعای خودش قرار بده کسی را با واسطه از خدا بخواد چه پیامبر خدا باشه چه ولی باشه این شخص با این کارش با این فعلش از اسلام خارج شده چون عبادتش خالصانه برای خدا نیست دلیل دلیل اینکه خداوند در قرآن یاد میکنه والذین اتخذوا من دونه اولیاء اونها یک اولیاء برای خودشون قرار دادن حرفش چی بود ما نعبودهم الا لیقربون الالله ظلفا ما انها را نمی پرسیم مگه بره این که ما را به خدا ندزیک بکنن واسطه قرار بی دادن. من جعل بینه و بین الله و صاحب یدعوهم دعا اینجا منظور صدا زدن غائبه کسی که مرده کسی که نیست اون کسی که میت د در د د م م م م که به دنیای ما برمیگرده ما مشکل نداریم ما دنیا. ولی که اون مسئلهی که غیبی هست اون کسی که همه جا و همه کس و هر صدایی را نود که خداست اگر بگید مخلوقی از مخلوقات مثل خدا برید پای قبط فکر میکنید اون مخلوق میشنود مثل خدا تو برای خدا در این صفت شریق قائل شدید خدا را یک تا قرار نداری در شنیدن اینجا دوچار شرکت اکبر شدید و یسئله هم یدعوه هم و یسئله هم قرار دادنشون با واسط یک مسئله از خودشون خواستن دیگه بزکر ای فلانی مدد به دادم برد ای پیر به دادن برد ای ولی فلانی این خواستن از غائب از اون کسی که حی حاضر نیست درست نیست خدا در قرآن چی میگه؟ درباره برای رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میگه اینکا میت و اینهم تو میمیری، همه هم میمیرد جایی در قرآن میگه و توکل على الحی اللذی لا یموت توکلت فقط بر کی باشه؟ اون کسی که نمیمیرد، پیانبرت میمیرد، نمیمیرد پیانبر صلی اللہ علیه و سلم میمیرد پس توکل بر پیانبر خدا صلی الله علیه و سلم درسته خیرش بلکه شرکه اکبر مخرج از من الله هست که ایمان را نابود میکنه ایمان را از ما میگیره رسول خدا را میبیدیم گروه های اناشید میان شیر میخونند یا رسول الله مدد میخونند میگه ندیدیم میگه نمیخون صدا نمیزنند فریاد نمیزنند بله میزنند اینا شرکه خواستن از غائب به اجماع اتفاق كفر این کفر اجماعن این کفره این ناقض اسلام انجام داده و دبا زیاده قرآن شاربی این مسئله میکنه و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یعبدون من دون الله بهر صدا یعنی کسانی را صدا میزنند که نه ضرری به درتشون می نرسانی تا جایی که خداوند در قرآن در سوره اعراف میگه ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم اینا ای که داری صدا میزنید که زیرخاک خوابیدن بندگی مثل شما ادم هم ارجل میشون بها تو دارن راه برن cầm بها دست دارن میام املهم اعلم يبصرون ما تشتر مبينن املهم اعلم ان يسمعون بها گوش دارن میشنون جواب فو دارن دست دارن میشنونن میبینن خیر خب اگر خیر پس چرا صداش میزنی کسی که نمیشنه زیر خواب خوابیده کسی که نمیتونه به ضرری برسونه نفعی براسونه راست راست اصلا میتونه اینجا بیاد قل انما انا بشر مثلكم يحاله بشر یع مثل شما فرق ما با شما در چیه بگوی محمد فرق چیه یوحا الی فرق من با شما در وحیه ارتباط با خداوند نه در این که رسول خدا صلی الله علیه و را شریک خدا قرار بدین در شنیدن و دیدن هیچ کس مثل خدا نمیدیند هیچ کس مثل خدا نمیشناورد یعبدون من دون الله ما لا یطوقهم ولا ينفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هر دفچیه اینا شفیع ما پیش خدا نه اینکه خدا رو نمیفرستیدن خدا را, نمی را قبول نداشتن اینا سفاهت گرمون پیش خدا آن نینکه مستقیمان از خود مرد می خاطن هاولئی شفعاؤنا عند الله عیسی رفی می پرسیدن این شفیع ما از پیش خدا هن بقاطر همین خدا همین خدا لقد کفر الذین قالو این الله ثالث دلاغه کفر شدن اونایی که گفتن خدا ستاست ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلموا في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى أما يشركون خدا من الزهر هذا الشيء كيف يقول علم غير نظري شو يقول الدهت بداماً رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفتم في سير قبرش بالفرد شنيف من أجل شخصا مريضين خوب بشه من أجل شخصا مفلار بشه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ علم غير بخباره مدوني كمان مستحق حسن نيسن میگه میدونه خدابند؟ میگه میدونه ببخشید اون بنده ای خدا که زیر خاص قابیده؟ اگر بگی میدونه علم غیب داره اینجیه شریق قرار دادن خدابند در اون خصوصیت که فقط نوال خدابنده تو شرک اکبر مفرج از منله هست صلی اللہ علیه محمد محمد